من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و علیه رسول و آلیه طیبین الطاهرین و اللہ که یه مقداری از بحث تفیف خارجشون و بحثای و مناسبت های مبارکه ویدون در متفیف این جوزه اصلاً که ظاهرا متفیف همین یه مورد در قرآن باشه دیدم بله همینطوره مثلا کلن از این ماده ها باشه متفیف باشه هر چی باشه همین یه مورد در قرآن بیشتر استعمال نشد و من در اصلا احتماللا مواردی که از این قبیل باشه که بعد هم در لغت عرب ککسات استعمال نداره. حالا من تا اونجای که خودم فکر میکنم کنم دقیققا نمار مگه کامپیوتر در اکنا کامپیوتر به نظر من تو روایات هم چند داشته باشیم چه تفیص داشته باشم امایه تف متفم این رو انی تففعل میاد به نظرم خیلی چند ندا داشتهید یا خیلی کم داشته باشیم. در روایات هم، این تعبیر تطریب خیلی کم داشته ولذا احتمال بسیار قوی در این دور مواردم هم همینه که اینها بیشتر جنبه مکی داشتن احتمالاً جده لغات دخیل در عرب بوده البته این بوده که زبان عربی به خاطر اینکه به اصطلاح تعدد معانی رو از راه اختلاف حیاءات نشون شون سعی داده سنی حتی لفظی رو که پرس مثلا جنبه های اشتقاقی نداره یک نحوی برای اون جنبه اشتقاقی درست کنه مثلا خود سفر در دو سفر که دوری انسان از محل زندگیش باشه سفر این دوری انسان از محل زندگی دور شدن انسان این خود این لفظ که معنای به اصطلاح مصدری خود این لفظ از خودش اشتقاق نداره کفته شده در عربی سفر زیدون اینه خرجه لیکن ظاهرا درست نباشه ارس کلیم در این وجه ها در ز... ولی احتمالاً احتمالا مثلا اینجور لحظ ها در حقیقت اگر دقیق کنیم بعید نیست اینجور لحظ ها بیشتر جمعه وارداتی داشته باشه موکنه لحظه سفر یه لحظه دیگری باشه بقید دیگری آمد برای اینکه در زبان عربی برای او از او خانه ای برنش سافر زیدون. این طلب پسه بستنم از خود سفر معنی اشتراقی درست نکردن معنای حدثی معنی از خود سفر معنی حدثی درست نکردن درست میکنی بردنش به یک باب دیگه تا درست کنی شد ساخر از مثل اراقش تو از درست اراق معنی حدثی درست میکنم میدونش باب افعاد اعرق زیدان ای دخل افراد اراق هنجد زیدان دخل افی این خسلت لغت عربی این کوب دخلت رو کنیم ما در این بحث ها نه به اون خصوصیات هر لغت رو با اون ریش اما یک کلیات بحث لغت هست که نظر ما فوق عراضه مفیده ما در لغت عرب اینجور لغت داریم مثل متفق که این احتمال داره این لحظه متفق یا مثلا از بقای های سمود باشه یا از یک لغت مثلا آرامی قدیم باشه، بابلی قدیم باشه، ابرانی قدیم باشه. چون ابرانی جدید در مدینه بود، ابرانی هم لغت یهودی‌ها بود. اون ابرانی جدید در مدینه بود. ممکن چه اصالت لغت دیگری باشه. قلت استعمال. ما الان ان شاء چند مورد دیگه که آیات در اینجا گرد داریم، و لا تفقنات اشراق، و لا تفقن مکیار و میزا بیجوری داریم نسخ و دخ هر دو کثف استعمال داشته در لغت عرم. مواقع دیگه هم داره خود نفس هم همینطور همه متفف اینطور نهماده اون در این عبارت در کتاب به اصطلاح مردم قرطوی در این جلد نونزه این عبارت ایشان اگر بود خیلی نافع بود انصافا و یقال رو لکل شیعن وفاون و تصفیر و یقال این اگر بود خیلی رفیق بود اما مشکلش نیه که تفریف اینقدر استعمال نشده وفا استعمال شده و اوفو بعدی اوفو برده و اوفو بردی اوفو برده اوفو, اوفو, اوفو بالعبود به بالنس رفا در موقع عرب زیاد استعمال شده اصلا ها یک لفظ رایج زبان عربی بود در معانی مخصوصا هم به کار برده می شد در درهم بیشتر از درهم ها مرادوش از درهم وافی اون در بود که درش غیر از نقره چیزی نبود یعنی تمام اجزای درهم نقره بود این مثل درهم وافی اگر این یقال ایشان میشه لغوی دانش خوب بود حالا شن تحت مصرف نشه استعمال نشه اون وقت این معنی میشه تضییر در مقابل وفاء خیلی معنای زیبایی هست اما تضییر وان و اما وفاء اگر اون اجزا کامل بود و مون ناقص بود تفسیرون دقیق و معنای وفایه تمامیت هر چیز به حسب خودشه مثلا بگن این یوان وافیه پره پره مثلا تا که خودش حد داره مثلا نه وفایه به نظر یوهون به نظر این وفایه به نظر چیه؟ و بایه به نرز از لحظه که تو نرز بستی همینطور کارش چون اون لحظه آخر آخر چیه وقتی که اون عمل رو انجام دادید مثلا گفتی لله علیه که امروز 20 نماز مستحبی بخونم کی وفا میشه اون رکعت 20 هم بخونیم رقیت 20 هم که تمام شد اون وفا که انشالله تعالی عرض خواهیی کرد اساسو لزوم در عرض هم اوفو به نقود اوفو به چرا لزومه چون من بنا گذاشتم که این کتاب که شما باشه در مقابل ده هزار تا شما که من باشه درا با هم دیگه. اگر من در اثنا برگردم کتاب رو از به شما برگردم پول رو از شما بگیرم وفا نشد رفع کامل نشد تمام نشد. وقتی تمام میشه که این کتاب در مقابل ده هزار من بمونه لذا اوقوم العقود معنی اوقوم العقود رفع در اهود کلون یه عمل به منتظم بیگه الان نفسه این وفای با بوده این معنای وفای با این معنا رو باز یک که دیگری در لغت عربی با اند افاده کرده المؤمنون اند شبوته ببینیم المؤمنون اند. یعنی اگر شما یک شرطی بستیم عمل با اون کردید اند شرطی پیش شرطی عمل نکردی از اون جدا شدی لفت امیده پیش بودی به و رضا ما از چند بار از این نقطه رایی تکرار میکنم اعتبارات قانونی در این شریعت مقدسه با یک لحن واحد نیامده و من در بحث نواهی مخصوصا تذرکار دارم برده ها در هم داره من نیدونم کلام آزی این این شبهر از این خیلی لطیق ها یعنی این ایجاد ایجاب میکنی یواشاش که خیلی مباحث و ما کارایی لازم رو نداشته باشه چرا؟ توبیه هست چون نقطی اصول این است که باید قابل جریان در ابواب مختلف فیلم باشیم مثل اصول اینطوره. طوره متاسفانه ما وقتی میگیم نهی در عبادات مسلزم لازم شخصال هست نه خوب دقت این نهی در عبادات این کلمه نهی در عبادات این لات و سلده. ما الان اینجوری میگیم لات لا سلده لات در عبادات اینجوری من این واقعیت با ما نداره با کتاب قرآن نداره مثلا ولات هم کمون مانحی ها با اکم دارید اگرش ای اینجوریه هرمت و اماس کن دارید یه جوش اونجوریه یه جوش یه از اون اوقت ها نکاح داریم، ای دارید اینجا لات همی ای کن نه لذا چی که پیش میاد نه می است تعبیر لا تعظم او داره نشا ممکن چون نخرده در عظمت به قرض این یک ظرافت دیگری داره لا تعظم شدن که استفاده از حرمت ابدیام کردن همین همینه چون نه میگونه که برمیدار چون نه عبارت از برداشتن تشریعی اونوری که برمی داره از نه لا تعظم او از وقتی که از مرداشی که حرمت عبدیم داره لذا اگر زنی رو در یامعه از با... مثلا دخول بکنه عرض بکنه حرمت عبدیم چون لا تعزمون یعنی این عظیمت شما برداشه شد اگر این طور باشه این معناش اینه که ما باید در شریعت مقدسه ن... نوازی و موردی نگاه کنم اگر موردی شد میشه که اگر کلی شد میشه حصول این ظاهبه کلی مثلا اگر ما اینجوری آمدیم گفتیم که مثلا همکه باید هم در فقه آوردن یه دفعه اینجوری میگیم میگیم هر جا که نهی آمد و حرمت آمد این معناش که اخذ اجرت در مقابل او باسه حرام که دیگه از کردیم اصلا طبیعت قانونی نه معناش اینه هر جا عملی محرم شد این طبیعت و قانونیش است که اخضا اجاد اخضا پول دارد تو ممنون اگه ممنون شد پول هم ممنون ممکن است بگیم نه این باز موردی برخورد بکنیم حالا این بحث کلی بود موردی موردی چی؟ یعنی موارد رو نگاه بکنیم مثلا در همین مورد ما عنوانی که آمده وی لون للمتقفیم که وی لون آتش درجات سخت آتش بعد انداره که بر... کتاب الفجار جی ببین این طور میشه تدخیف یک عملی که آتشه و خب اگر آتش رو در مقابل آتش شما پول ریستید اون پول هم سخته میشون اون پول هم پس ما اگر آمد در مقابل تعبیر تعبیر آتش بود از این تعبیر میتونیم حرمت اجاره هم در بیاریم من از درم بحث این هست. که ما عنوان داریم ریلون لیل متصفی این طرح آیا از این می توانی اگه کسی کار بیادیم یا من کارم کنفروشیه اجاره بشه برای کنفروشی اصلا اقدر قرار داشت که ای توی این دکان روشی بکنه برای این جهر پول بگیره برای کمپو چون استاد این کاره آیا ماله که این ماله اجاره می شونه هسته اون سر بطلان رو ممکن است ما به طور قاعده کلی در بیاریم ممکن است به طور قاعده خاص این راجبی این رسن این که یقال کل شیعن آن و تطریف اگر این هم ثابت بشه می ثابتش بیم مناسی ما در لغت عرب این استعمال داره این خیلی نقطه زریفیه لیکن مشکلیه که ما تطریف باریم استعمال نداریم چون وفا یعنی تمام تطریف نه هرچی نظر که نفسده که دیگه پس بنابرای این تفصیل کسی نفسش خودش رو اجاره بده پول بگیره یک سال نماز بخونه عملا نه ماه بخونه این میشه تصفیر ها هر عقزی رو اگر این اصلا چون یقال دارم این این از جا روزه ما خیلی رو هر کلمه قبول نمی‌کنیم. اگر این مطلب عص داشت این حرف خوبیه اما الان عصرش هم رو سرده نکردیم ذکرله شیئن رفاهون و تشفیون این نیست که فقط در باب خیر و باشه هر چیزی این تصور رو میشه پس اگر گفت مثلا نذر کرد با مثال 200 هزار تومان مثلا به این مکسر کمک کنه یا کلان کار انجامم اما در مقام عمل 190 هزار داد این میشه تشفیید ولی گفتید اگر 200 تومان رو داد میشه رفاه اگر 190 تومان رو داد میشه اثبات این معنی الان مشکل انصافاً با یه کلامی در تفسیر و قرطبی آمده یه قائله رو اثبات کنیم که ترتیب به این معنی شامل و واسعی باشه که تمام این موارد رو بگیره خیلی روشن کنیم مکنه از جهات دیگری مثلا این وفاندنه رو نکرده از جهات دیگری ممکنه اشکال داشته این جهاتش نه وقتی از یه بحثی مطرح کردن ایشون که این تفریف رو ایک تحیل لغتی بکنن احتمال بودن که تفریف از تفریف باشه خلیل خب اگر از خلیل باشه تو باید رو باید اینجوری حساب بکنی چون اینا آمادن اگر آن وقتشتان میگه به وقتشون یا شرح نظام یا مثلا شرح شافیه مرمون این مدل امی روزی به زن داختال علی چون در اون شافیه ابن حاجه معانی متعدد باب تفعیل رو داره سوال اون در اصل عقب و موارد در اول اشاره مونجل هم مانی متعدد باب تعریف و اگر با رویش صرف و مانی باب تعریف مانی متعدد داره این ان شاء الله در بحث لازم رسی و این بحث میره چون مرحوم دی از بزرگان معاصرن که یک معنا بیشتر نداره این مانی ترجمه دیگری نقطه دیگه توی صورا و مصاغر مصلا بر مطلب هست و اشتباه مفهوم به مصاغر شروع درز می کردم بحثش درز که واه این تفیف، این تفیف چه نشه؟ رو چجوری با تفیف نسبت بدیم؟ <تصفيق> یعنی چی؟ کم کم کردن، تفیف در تفیف قرار دادن؟ اگر مراد تفیف قرار دادن، مثلا بخواد 1 کیلو گندم بفروشه، کی تفیفش قرار می‌ده؟ مثلا در گرم، صد گرم بفروشه. درسته که تفیف اینه که کم بکنه، نه کم بذاره. نشان قرار تصریف اگر از تفییز باشه جعل هو تفییزه این جعل تفییز به کی میخوای یک کیلو 100 گرم بنداره. این میشه جعله محل کلام ما نه یک کیلو 100 گرم کم بگذاره سر گرم بذاره بیشتر چه بده کمتر چه بر داره این ممکنه به لحاظ ادبی مشکل ایجاد بکنه به لحاظ اون قواعدی که در باب اشتقاق دارن در باب صرف به با اون و نزار میگه المتسف به این معنا المغلل حق صاحب حقیقی حق اون رو کم بکنه اینجوری مثلا <تصفح> نه جعل تخفیف یعنی کم رو ایجاد بکنه تخفیف ایجاد بکنه تخفیف ظریف بشه بعد از رجایی مثلا نهاره کردن که چرا به این گفتن تطفیر یعنی کم کردن نه کم گذاشتن به این معنی چرا گفتن چون گفتن کسی که می‌خواد تطفیر بکنه همیشه کم مثلا سب, سب, سب گرم کم کن پنجا گرم یعنی دیگر سب گرم کم کن که کامونم یا گفته شده که این اصل از تطف شی تطف شیر عربی باشه نباشه چون ترس به جانبه بس به عبارت دیگر اون به اصطلاح پیمانه های در نظر بگیریم مثلا در سابه ها که بود خب ممکن بود پیمانه رو پر بکنه به اندازه یک لایه باریک از روش کم بکنه اینا می آمدن می توان یعنی جانب و تدفیف اینا تدفیف یعنی سعی بکنه اون جوانه به کم بکنه تفر رو کم بکن اینجور نعرش شده اینم چیدی منش این رو ندارم و اینم آقوخه به من تفر شی با حوال جانه رو و تفاق المکک مککک فیمانه هست بلکست و تفاق و تفاق ماملع اصباره مثلا از پیغمبر نعرش شده کل کنبن و آدم تفف از می این روایاتم برفر ثابت باشه احتماله از است که خیلی دخیل بوده و بعد دیگه در میان زبان عرب جا نیفتاده یعنی کسی استعمال و درمان نداشته همین حدیث حدیث قشنگیه کل کنبن و آدم پیغمه تمام شما انسانها کل کنبن و آدم تف و سا تف مفتوح هست بر درتیگه همه شما بلی آدم پیمانه سرویزی ویز. سر نیستید پیمانه جان جانب پیمانه یعنی پر نشدی فقط ممتینه یک انگشون به پر بشه دو انگش نیم انگش همه پیمانه های پر نشده کل کلو کن بنایم آدم پس فستا لم تملعو پر نکردین اینسا رو لذا کسی از کسی انتقاض نکنه همیشون مثل همی. حالا این آقا در درستت ای دارم آقا هشت در درستت هیچ کدوم سد درصد این تیمانه رو پر مگردیم این نیست این تیمانه پر شده باشه این تعبیر تفاف المککوب مامله اصباره این اصبار به این معناه لفظ سرده برات عرب بسیار پر استعماله الان هم ما استعمالی صبر و صابر و همه چیز به کار میداریم انصافا لفظ پر استعمالی کنه اما یکی از معانی این کلمه که بزنشان فهم می‌کنه صبر و صبر غیقی سر به زم و کس جانب شه یا بالای زرفت رو میگن شون محصول چوبار در نظری و با یه جوانه بیبره میگن ملع اناره به اسباره اسبار یعنی تمام اون بوش زوایه های زرف رو پر کرد نه فقط حتی بالاش یعنی که به این دیگه صاف صاف با لبه ی ضرب شد اینجا میگن ملع از ضربه و اصباره این عبارت اینه ما ملع و هوه این که حدیث ایشون این معنی میکنه حدیث رو به هوه عنیق و عنیقمتری و, و اینا اون تفاف ازا بلقل می ملع اتفافه تقول و می اگر این تصفه این معنا صافت بشه میگن تفافل انا اون قسمت بالای اناه وقتی تففه اتففهو یعنی تا پر نکرد تا قسمت بالاش خالی نمید قاله و تقول و منه ها امسست و, و تففیر حالا این هم نبیدونم برای من. من چون به وقت عرقی مراجیگن این همون این نبید مستوسیقی مراجیگن ایشون میگه که به این معنا از باب افعالم آمده یکی از کارهایی که هرام کتابهای لغت حرم می‌کنم می‌کنم مثل و اقرب و اینهای این کتابای محاصر ما دیشون می‌دن به شما که از اوزان سلاسی مزید هر ماده چند تا آمده چون ممکنه مثلا ماده ورمه باب افعالش آمده باب تقییلش آمده باب مفاعلش نهیم عرب استعمال نگه این که شما در کتابها می‌کنی این چی نیست اینه یکی تقول و من از خفصو یعنی مثلا باب استفعال نه آمده باب مقاعده نه آمده لیکن اونی که فقط در قرآن داریم باب تقلیه باب افعال هم نداریم ایشون میگه آمده در لغت هره از تو. و این ظاهرش حالا من از میکنم شون انصافم اون چی که الان مجموعه کتب قدرین دست ما رسیده وقتی تحلیل تاریسی و ادبی و ذرافت و عدبیش در می‌کنیم، ما مشکل با می‌کنیم. برخواهی میکنیم ایشون از حق طول کسه الا اصبار ها در مقابل این اطفت اطفت اگر این درست باشه چون ده ها این هم لفظه استعمالیه تا که من میدونم یک بار در قرآن استعمال در از نظر متقین مرخوض هم از داره و کس هواه در و کس هم ده در به کار برده شده ده هاق ابایت از زرفیست که محضاری درش ریخته شده ولی ایشون که عده رو به معنای پر گرفته اما ده هاق در اون زرف ده هاق کس اشاره به اینه که اون کسی که در روز حیامت به انسان داده میشه و همون مقدار عمل دنیاشه. اگر در دنیا 60 درصد حساب داشت اون که اصلا داشت 60 اصد شراب این بره، در دنیا حساس درست ده ها با عمل او او کس کسی که او داده میشه این اکاس عمل اوست 60 درصد خیرات اونم 60 درصدش پره هفتاد درصد قیرات اونا هفتاد درستادش بره صد درصد قیرات اون ذرف اون کلس هم اون راه هم صد درستادش حاله و این صحبتی که شده سه شده بعد اشتباهاتی دیگر از این گرفته بشه به نظر من میاد که ها خیلی روشن نباشه در این کتاب فاضل و ما هم از لسان العرب تا کرده بله در رساله العرب ایشون مثلا چیز می‌خونه که ایشون از توفا رو ما فوقل نکیل گرفته رحیل تفاق کل انا اعلا اگر اینها ثابت بشه خوبه اینا میان میان خبره اینا قلمی استعمانی این, این, این با تعیف میخوره چون اون ظرف پر نمی‌کرده متفق انت پر پر نمی‌کرده و تدفیر انیو اخده اعلا ولایت مکیده مك... ولا یا ولایت مکیده اون بالاش برداری در زفر نصف درگوش و تدفیر فوق مکیال انیق رو بل انا من الامتدا و الى آخری و تدفیر البس و فوق و الورد و نفس المکیال و نفس المکیال و هو انلا تنده و ها الى اینجا اصباره شایده اصباره اصبار جمع اصباره و جمع صغر یا صغر یا به معنای جوانب یا به معنای بالای زرف بله بعد ایشان داره که از تدفیر نقصون یخون و صاحب او یخون و بیهی صاحبهو فیدچه این اوورده این عرض شده که دیگه بحثه معروف که قول و قوی در تحدیل لفظی خیلی حجیت نداره انصاف قضیه وینون متطفیب به معنای خیانت باشه این میخواد توش با همون تطفیب خودش هرام میخواد خیانت با جمعه باشه وقد یک کونن نفس لیرجه الا مقدار الحم فلای و سما تطفیفن این ندارم چون عواضه شکل کمه امه دارم توضیح بودن ایشون میگه هر نقصی که از انابه کنه این تطفیبش نیست چرا اینش نیست؟ مثلا شما گاهی اوقات این پیمانه رو پر میکنید مثلا سابقا که مثلا پیمانایی بود که قرار گندم میکردن این پیمانه رو پر میکنید بعدن زیاد بالا بالاش در حقیقتش این با باید چیزی با یه داسی صاف که مساوی بشه این میگه این تضییض نیست وقتی خونن نص ل یک اعلام مقدار به هر زیادی پر کردید مهم برگردونید خلافی شما تضییضه این اسمش تضییض این درسته اجازه تضییض یعنی عین حرفه این وفا به حقیه این تدفیر نیست ولا یسما به شیع الیسیر متففن علا اطلاق صفه حتی یسیر الى حال یتفاهش زیاد باشه این حرف ایشمان ثابت نیست این که مثلا تدفیر 100 گرم 150 گرم باشه به 20 گرم نمیگم این درست نیست مگر مرادش این باشه مثلا یک دانه مثلا وقتی ورزن داریم یک, یک گرم کم داره چون در افت تسامه دارن در مردار و الا اگر بدانه کمه و قابل پشتیسته تنگی باشیم کمی رو باز وقت بکنه این هم یه مردار راجبی. اون وقت از کردم که ما در مجموعه آیاتی که داریم ما آیات این بیش عزیده. مثلا در سوره الرحمن و سماع و رفعه ها و وبل میزان املاف قطعه میزان اینجا عنوان تغنیانه در میزانه و عقیم و وزن در و در مقابلش اقامه وزنه در قصد ولا قطعه سروی میزان احتمالاً شون آیات مکید بگم در مکه وقت میزان بود اینجا البته چون من یک ذابطه یه هستم در آیات مکید یکی از چون میگی در آیات مکید اشتمال بر نهو از مساله و ملاکاته خصوصا گاغا این ها جنبه غیبی داره یعنی ما منتظر انواع مختلف جنبای غیبیه اینجا دقت بکنید مشاءع رفعا یعنی خداوند متعال خبر میده که نظام خلقت برای یک نظام تام محکم و که در اون هیچ چیز کم نید. همه چیز جای خودش قرار گرفته و بعد از از اون نظام معالی خلقت بر میگرده این امر قراردادی در جامعه که میزان باشه چون در نظام الهی هیچ نهره کمی نیست ولا تدقه که میزان این نظام قرار قرارداد که شما هم میزانشون دقیقاً با میزان الهی مناسب باشه پس بنابراین انصافاً سیاق آیه هندل آزه اون که کار به سیاق آیات مکی میخوره و هیچ نهره اجتماعی بر به اصطلاح جزا نداره بلکه به اصطلاح اون بیشتر ناظر به مبدعه الاسه مبده که مبده احکام حقیلی است اون که مثلا اون که ما به عنوان حکم حقیلی می دونیم اون نظام تام الهی است که در آدم خلقه قرار داده شد در سوره شعرها شعره از, شعره از زبان شعید نرد شده و او فل ولا تکونو من المخسری و زنو برقصاصوی مستقیم این هم از آن الفاظی است که همه مشکل رو داره ولا تکرس و ناس اشیاء هم این تخص تبخس الناس اشیاء هم امومیت حیده میکنه ولا تأثیر قراره مفسدی باز داریم ولا تبخس الناس اشیاء هم این بخیر یا قوم اوف المکیال اوف المکیال و میزان، این در مقابل اون تدفیف وفا آملی و قلونه هم ولا تخص الناس اشیاء هم ولا تأثیر قراره مفسدی پس معنی شد که این مفهوم یک است. که در قرآن به و متعدد آمده و حقیقت شیعه که اون که ترازو و مکیال ما پیمانه های ما کامل باشه وافی باشه نفسی درش نباشه تعاویر مختلف منحسد در کلمه متفق نیست که باقید در او بحثی بکنیم اون وقت در اینجا به لحاظ روایات روایاتی که ما داریم بین خودمون و احسان نزد این روایات هم هست و بعض هم در روایات اگر تاکید زیاد نشده چه میگم مضامینی که در قرآن روش بیار تاکید شده ممکن در روایت که تاکید نشه مثلا این مسائل تاکید تف... در چند آیاتی ذکر شده در روایات ما مثلا دیگه ممکنه اون تاکید بشه چون خود قرآن تاکیدش کرده دیگه جوی استدلال به قرآن است بله روایت هست نه جمله از روایاتی که شواهد شیعی تامین اهمیت داره نُفتیفنی در روابط زیاد یالا واقعا بخونیم این چن اَش و در وصایل هم در ابواب متعدد این روابط و رهاییش هم مراجعه کنن دیگه دی نه چون نُفتیفنی که الان اینجا داشته باشیم نداریم نظریه بود با شواهد لغوی خارجی یعنی با شواهد سایشی دیگر در آیات هم به مضمون کلمه به استناد می‌خوام پیاده بالای که ادعای از اهل سنت به سنعقل کردن از عبدالله بن عباس و عبدالله بن عمر به واسطه استفاده قشنگیه پیغمبر قال نبی صلی الله علی ال علیه و آله مالک مالکی نه چیزی از ام عادیس ابن عمر نفی کرد خمسون دهن هر چیز و هر چیز ما نگذ قومون از اهل الا صلی الله علیهم عزوجهم اگر قومی به اسطلاح ما که دارن به اسطلاح هایی که دارن قرار دادهایی هایی که دارن اگر اینها رو به اصطلاح از نقض عهد بکنن التضامات اجتماعی خودشون رو این جامعهشون به هم می لذا عدوب و اونها پیوز باشه ولا حکمو به غیر ما انذر الله تعالی الا سشافیه ملتق احکام من در آردی من در کارهای من در عوضی کرد انجام دادن این منشأ انتشار و اشعائی فرق میشه فشا فیهم و فرق. و ما غهرت فاهشت و فیهم فاهشی خودشونه هم ظاهره اما در اصطلاح به معنای زنا بفته شد الا غهرت فیهم و تاؤن انغاز عمومی مرضای واگیر اجتماعی که الان هم که الان این عید زوینام پیدا و ما تفف کیل الله من او نباتط و اوخلو به سنین هرچی که کم بکن خدا هم برای کم میکنه تزار کمکن پیما ها رو کم میکنن خدا هم نباتط و تحتفی بر اون ما میار. ولا من عذکات الله حبصل الله ان حمل مطر. این حیث رو عاصل در محبیمال کم این حدیث عجیبش اینه در روایتی از ابو همزه سمالی عمد عبی جعفر داره ای شما ما وجدنافی کتاب رسول الله من این نفیش و این حالا با اینکه این حدیثی سنت دارن کلام شبری باشه خود اهل سنت اینجوری که من دیدم نقل بکردن این معنی میشه از نوشتارهای صحابه بوده که از دهان فیغمبر مونده و جنافی کتاب رسی یا خود طم بر نامه نوشتم خیلی عجیبه. این رووای از عجاهشینه. درمون رو پ تا دو خص... تا ب بله. الظ از ذنامن بعدی ک سر ماتل فاجعه و ال ت فظه و مکیال آخرها الله به سنی و نذ. این مال اون نواز و خذوب سنی، این مطلب در روایت ما به این دوقت آمده در روایت اونها بود. از جمله روایاتی که پیش ما آمده اینه حضرت صادق و صفان ابن مهران فرمیدن این کن خسرته حالا که به ما من قبلكم من, من قبلكم من الامم قال و ما همار یقین رسول الله صلی الله علیه و عالیه قال المکیال و المیزان المکیال و المیزان شبیه این مطلب هم در کتب اهل سنت آمده از ابن عباستی این, این تطبیق روایاتی که ما از اهمه داریم در این حال همون مطلب هم تقریبا از اهل سنت و علماشون داریم اینو را ای بررسی بشه شاید بهتر بسید نتائجی بگیریم این نفر مآش را اعاجم ولی تم امرین این گفتن که چون گفته اهل معاجب، و وخصا عاجل ده نهان کان و یزغان کیل بر جمعیت چون ایرانی ها هم مکی داشتن هم موضوع و کان و بلی بله و کانو مفرقه این در حرم اما در حرم مکه و مدینه متفرق بود کان اهل مکه یزنود مرج میکردن و اهل المدینه یک اما اهل مدینه اهل چیه بودن انكم معاشر عاجم علیکم امرین بهما هلک منکان کان از المسیار و میزان اینی عباراتی که به امام صادق نسبت داده شده این از ابن عباس هستند دو سه نقطه راجع به حدیث چون احادیث خرابانه دیگه خدا هار مراجعه کنن احتیاج به که من در ایجاد داره نداره اون و مرحوم شیخ بعد می‌خواد علیه الیله الادله الاربعه رو خوندید البته اجماعش قطعی است لیکن اجماعشون به خاطرین علیلت پیش شیعه به اصطراح خیلی مثلا ارضوش ایلینه دارشون مدرکی سکردن بعد مرحوم شیخ سمه ملبخص فل عده و ضرق یل حقوبی حکمه و این از موضوعه من توضیحن از کردن حتی در مشاهده حتی در توصی فرمون کنه شون فقط عبد و ذرع رو گفته در هر چیزی تطریف تطریف تطریف بلکه نگاه گفته شد که در وضوع تصفیه هست در نماز هست بلکه گفته شد لکل شیعه و تصفیه خلاصه <تصفح> مفضل همه انصافا به این انزعریزش مراد در کلمات فوقها و اصولین ما نیست اینطور نیست که در این کتاب ها هم به این طور باشه پس تا اینجا روشن شد با جبه این که به حکم عرب به قولیشون عدلی اول به حکم عرب هم تصفیف حرام خب چون این دوره دیده یا دوزیه به ازدار کم وزاشتن کالا یا پول اینو دوزیه حتاب میشه و ظاهرش اینه که از این عدلی خود تصفیف با حرام حرامی من همه آی, آی روانی ایشون یک تصفیل دیدن تو مسئله که فردان شد اینشالا بین کنی و بودجه تلفن حرام نیست